بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآل وصحبه أجمعين أما بعد بانج من درس أسس درس هي سوري يوسف أيدهم فرمضي الله جل شأنه قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل منهم یکی از برادران یوسف از اون دهت برادر تنی که عاقلتر از بقیه بود گفت که یوسف را نکشید یوسف را به چه بندده چون هدفمون چیه؟ که پدرمون به ما توجه بیشتری بکنه کل توجه پدرمون به یوسفه اینجا این برادر اونها را منصرف میکنه از اون فعلی که بخشودنی نیست اونم قتل و معمولا هم چیه که انسان از برادر بزرگترش از یک شخص خودی بیشتر قبول می‌کنه تا یک شخص غریبه. اینجا یکی از میان خودشون بوده، اگر یک کسی غریبه بود در میانشون شاید این حرف اون وزن خودش رو نداشت در میان اونها. چون بزرگ بود، سنی ازش رفته بود و از میان بقیه عاقل‌تر بود، حرفش وزن داشت. گفتم خب باشه چش تو که میگی نکشیم تو چاه بندازیم، تو جامعه خودمونم هم می‌بینیم، یک سری اشخاص یک وزن خاصی دارند در حل اختلافات در میان جگری کردن یک وزنی خاصی دارن این یک روزیه یعنی چیزی که الله گذاشته در میان ماها و همونطور که قبلا اشاره شد روزی ها فقط حسی نیستن مادی نیستن جاهای روزی ها معنوی هن. مثل اینجا که ما میبینیم یکی از برادران یوسف در میان برادران دیگر یک وزنی خاصی داشت و اومد از اون وزن خودش استفاده کرد تک تک ماها مسئولیم به مقداری که وز داریم به مقداری که شخصیت داریم حاجت دیگران را برآورده بکنیم و حل اختلاف بکنیم نزاعات را از بین ببریم مشکلات را از بین ببریم اصلاح بکنیم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند به شما چیزی نصیحت نکنم توصیه نکنم که از تهدیدتون در شب روزی گرفتن هر روزتون بالاتر چی چیه رسول الله کس همه اینها بالاتر فرمودن اصلاح زات البین اصلاح زات البین بیای اختلافات را از بین ببرید. این که عبادتی از عبادت‌هاست. خصوصاً اون کسی که وزنه هست حرفش سنگینه، حرفش برش داره. وظیفه‌شه که بیاد اصلاح بکنه و اون اختلافات رو از بین ببره. خب بحث برادران یوسف، توته میچینن نشستن با خودشون مکر و نیرنگ برای دور کردن یوسف از پدرشون که پیغمبره، خودشون هم نمی‌دونستان پی... پدرشون پیغمبره. پدری پیغمبر ولی این پیغمبر الهی یک محدوده‌ای در قدرت خودش داره یک وزنی داره که خداوند اون وز را مشخص کرده کامل نیست ناقصه الله اینو میخواد بهمون برسونه پیغمبره بچه‌هاش نشستن مکر رو نیرنگ میکنن اون مطلع نیست چرا چون عالم و غیب کسی دیگه است الله یک از درسایی که بهمون داره میده اینی که اون کسی که نقصی از نقص ها در شخص مستحق عبودیت و پرستش نیست اون کسی مستحق پرستش حمد الحمدلله حمد مطلق ستایش و سپاس مطلق الله أن كسيك كاملة. چرا الله در قران به رسولش صلی الله علیه و سلم میگه انک میت و به القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم حی مطلق نممیره ولی به پیغمبرش میگه انک میت نقص درش تو الله به خودش میگه ليس کمثلی شيء وهو السميع البصير الله سميع بصيره والله یسمع تحاورکما مش نتصخنون انتم اونجوری که در سر نشسته بودی در خفا صحبت میکردید الله عالم غیب و شهاده است پنهان آشکار را میدونه در دلها هم میدونه که چی میگذره ولی آیا پیغمبران الهی میدونستن از غیب آیا یعقوب اینجا از غیب میدونست پیغمبره ولی نمیدونه کسی که ناقصه مستحق پرستش نیست مستحق تعظیم و ذلت نیست اینکه تو سر به سجدهش بگذاری اینکه تو حاجتت رو ازش بخواهی. چون اون نمیدونه از آینده‌ت عالم نیست اون کسی باید دست به دعایش برداری ازش بخواهی که از آیندت میدونه اون کسی که نسبت بهت مهرورز رحمان رحیم لطیف رعوف الله الله هم از اون چیزی که به مسلحتت میدونه هم این که نسبت به تو مهربانه آیا خلق خدا حتی پدر و مادر رحمشون با رحم الله قابل قیاسه رسول الله صاحب بچه رو میبینه در آغوش مادر میگه آیا این مادر بچه شو در آتش میدازه گفتن نه؟ چرا؟ خب رحم داره نسبت بچه از مهر مهربانی داره گفتن الله مهرش و محبتش نسبت به خلقش قابل قیاس با این مادر نیست رحم الله با این مادر قابل قیاس نیست یک ذریه از رحم اللهی در قلب این مادره فس الله رحم رحمینه وقتی که من در غیر الله را میزنم میرم پیش ولی در قبر مزاری میزنم یعنی چی؟ یعنی من وقتی خودم را غافل میسازم از رحمت الهی خودمو بیخودی خودی می زنم انگار که ارحم الراحمین وجود نداره انگار که سمیع و بسیر وجود نداره یعنی چی؟ یعنی اون میت بهتر از الله نسبت به تو دلفسوزه؟ یعنی اون میت حرفتو رو میشنوه ولی الله از اونا ها حرف حرفتو رو نمی‌شنوه؟ چی میخوای بگی با این کارت؟ چرا در غیر از الله رو میزنی؟ به خودت بربگرد. به خودت فکر بکن. اون اللهی که حی و قیوم، اون اللهی که گفته من نمیمیرم من زنده‌ام، من خسته نمیشم لا تأخذه سنة ولا نوم. نه چرت می‌زنه و نه ولی ما می‌خوابیم. چرا ما باید به خودمون اجازه بدیم که قلبمون به کسی جز به کسی غیر از الله وابسته بشه از الله غافل بشیم غفلت الله هست الله میگه من میشنوم الله میگه من میبینم الله میگه من عالم غیبم الله میگه اذا سالك عبادي عني فاني قریب اگر بندگان از تو خاصن من قریبم نزدیک شما میشنوم میبینم ولی با این وجود انسان قلبش به کسی دیگه وابسته بشه و در کسی دیگه رو بزنه پس انسان باید هوشیار باشه اینها درس ها هست نباید یک شبهه ریزی ما را از دائره عبودیت و پرستش الهی خارج میکنه. یک نکته در قصه یوسف سبب گمراهی شده یک نکته اون نکته چیه؟ کل این نکاتی که در براد بشریت و بندگی یعقوب یوسف هست همه کنار میذارن یک قسمت از اون مقام معجزه را فقط بهش متمسک میشه فقط اون را یدق قرار میده اونم قضیه چی؟ لباس یوسف حالان شلا میاد به وقتش که از برکت لباس یوسف یعقوب بینا شد خب این برکت اگر مطلق بود اگر همیشه بود اگر این برکت همه پیامبران داشتن این برکت اینجا کجاست؟ بین یعقوب و فرزندانش چرا خود یوسف از اون برکت لباس خودش خودش برخوردار نشد؟ اومردن در چاه انداختنش، گرفتنش، نتونست از خودش دفاع بکنه. برکت دیگه چون خیلی استدلال میکنن چون لباس یوسف ای شده برای شفایافتن چشم یعقوب، هرچند که اونجا بحث خوشحالی بود، بحث یک معجزه بود. ولیکن این معجزه شده یدک برای اعتقاد در ظریح بگیم، نمیدونم خاک بگیم، نمیدونم در و دیوار قبر و مزار بگیم. طرف قبر رو بینه پیراهنش رو میگشه خاک این گله این سنگه شخصی که زیر خاک خوابیده خودش از اون خاک و گل ای نمیبره در اون تنگنایی داره به سر میبره در اون قبر چرا به خودت اجازه میدی که بیای الله را فراموش بکنی و بچسبی به در و دیوار و سنگ و گل و آهن و مس از اون چیزایی که با دست خودمون ساختیم خودمونم میدونیم آهن چیه خودمونم میدونیم این سنگ چیه سنگه سنگ میخواد چه کار بکنم من دست بهش بکشم شفا میده بنیانیم رو به این بر برمیگردونه اینا هست که انسان باید هوشیار باشه و بدونه که چی داره و از کی میطلبه و اون کیه که من دارم ازش میطلبم هر کسی را مقدار و وزنش ما بسنجیم اینها بشر بودند درسته بر اونها وحی شده قل اینما انا بشر مثلكم یو الی فرق من تفاوت من در وحی الهی بر من وحی میشه الله بهم میگه این طور اون طور بگو این حرام این حلال این کار بکنید اون کار نکنید ولی که من بشرم مثل شما غیر از بشر نیستم ملائکه نیستم خدا هم نیستم بشر یعنی چی؟ یعنی یک محدوده، یک پرانتز از جمله درسا در این سوره این که وقتی که انسان نیرنگ میشینه حیله میکنه یک کار اشتباه در پیامت اون کار اشتباه اشتباهات دیگری میاد گناهان دیگه یک گناهی میخوان انجام بدن اول کشتن و بعدم در چاه انداختن حلوش این گناه گناهان دیگری انجام میشه میان پیش پدرشون ای پدر ما میخواهیم بریم فردا. بازی بکنیم کوه دشت و دمن برادرم ربما بفرس. قال و یا آبان ما لک لا تأمنا على يوسف و اینا له ناناصحه. ارسلم معنا غدنا یرتع و یلعب و اینا له لحافظ بفرس ربما با بیاد بازی بکنه بیاد خوش باشه. دلفسوزی شروع ابراز کردن و اینا له ناناصحون ما میدونی دلفسوز برادرمونیم اهل ناسیحتیم. توییم نیستیم که ما دشمن برادرمون باشیم. نه, نه ما دشمنی نداریم یا سمن. اینا له ناناصحون. هیچ دشمنی و کدورت بین ما نیست بونه دوست داریم برادرمون ما هم ازش حفظ میوای ان الله حفظش میکنیم همه مکر بود دروغ بود این دروغ ها از کجا آمد؟ از اون توطئه‌ای که در ذهن خودشون در خلوت چیده بودن گناهی پس از دیگری اومد بدونیم در گناه را باز کردیم در گناهان دیگر باز میشه نگاه نامحرم تلویزیون باشه موبایل باشه سراب میشه انسان وسوسه بس بشه صحبت بکنه از صحبت میره به بعد قرار و غیر مقدمه است مقدمه شیطان نمیاد مستقیم بهت میگه بگه که بیا این رو بکش نه چرا مشروب پیش هایی که مشروب خورن لذت بخش خوشگامه براشون اونها رو شاد و شادمان میکنه لد چیه در یک مستی به سر میبرن از خود بی خود میشن چیه این قضیه مثل اون فردی که او را حق انتخاب دادن بین سه چیز زنا بکنه قتل بکنه مشروب بنوشه یک از ستار انتخاب کن گفت که خب زنا که نمیتونم مرتکب بشم قتل نمیتونم خب میام مشروب مینوشم مشروب نوشید هم زنا کرد و هم قتل کرد عقل دیگه کار نمیکنه وقتی که انسان مسته عقلش کار نمیکنه دیدی دیگه شخص مسته میزنه ماشین به در دیوار شبر شب میگرده به خونه زن بچه له آورده میکنه چقدر از اون خواهران ما هستن که مینالان چکار کنیم شیخ شوهرمون اینطوریه مست طلاق بگیریم نگیریم کوتک ما میزنه غیر از دار کوتک چیزی نمیبینه کار کنیم چیکار نکنیم مستیه خوبه که این چنینین زن و بچه حقیر بشن زلیل بشن به خاطر اینکه یک ساعت تو خوش باشی یک شب تو خوش باشی حالا غیر از اون پول و مالت که از خصاصاتت زن و رو ازش محروم کردی ولی گذاشتی برای اینکه یک شب خودت شاد باشی غیر از اون مال هنگفتی که میدی برای این کارت اینا هست شیطانه نا برای یک شب خوشی چقدر ظلم شخص مرتکب میشه؟ بس مواظب انسان باید باشه از اون گناهان کوچیکی که وسیله هستن برای گناهان بزرگ قالوا یا ابانا مال لك لا تأمنن. ای پدر اومدن با محبت وارد شدن با ادب وارد شدم ای پدرمون ای پدرجان چرا احساس امنیت در ما نداری چرا به ما اطمینان نمیکنی چرا به ما اطمینان نمیکنید اطمینان نداری علی یوسف برادرمون یوسف و ان لهنا نصحون ما هم که دل دوستش داریم ارسلهم عنا غدا يرتح و یلعب بفرست با ما فردا ما بالاخره بزرگسفند داریم به چراگاه میبریم اینم بذار چوپانیش بکنه بذار با اون گله و گسفند خوش باشه با اون دشت و دمن خوش باشه بازی بکنه و یلعب و این ناله و لحافظون ما هم حفظش میکنیم ما هم حواس بهش هست حواس بهش هست یک مسئله اینجا الله از این تربیت بهمون به میرسونه ماهایی که پدری بچه نیاز به تخلیه داره فرزند نیاز به تخلیه داره نه نیاز به پلیستیشه نه تبلت بذاریم بچه تخلیه بشه اون انرژیی که درش هست در اون فضای باز حالا چه دریا چه دشت این پیغمبر خداست راضی میشه بچهش را بفرسته به خاطر اون اثر مثبتی که هست نگاهی اون منفی نمیکنه اینجا چشم از منفی میپیچونه هرچند که میدونه اینا دارن مکر این توتر رو میدونه گفته شده که در خواب دیده که گرگی داره حمله میکنه به خاطر همین بیاشون میگه ماظب باشید گرگش نخوره ولی که بحث نیازه بچه نیاز داره حالا چه به خاک چه به کوه چه به دریاس بلی حواست جمع باشه هر جای رفتی خوم بچه کوچ کنار لب ساحلی گرددید. یک لحظه چش متر رو ازش غافل نکن. یک لحظه برای خودم پیش اومده. کنار رودخونه خوونه بچم بازی میکرد نه یک بار دو سه بار برام پیش اومده. یهو می بینم که سرش زیر آبه. بچه خردی هم نداره اون لحظه که به کار ببره خودش رو نجات بده. یک لحظه هست سرش می زیر آب نمی بینین جمع باشه مسئولی و اینجا. برادران یوسف ابراز مسئولیت کردن پدر جان ما به اندازه این جایگاه هستیم میتونیم از برادرمون حفاظت بکنیم حواسمون بهش هست خب اینجا اینها سبب میشه که یعقوب تسلیم بشه احساس امنیت بکنه در برادران یوسف با این حرفایی که زدن ما حواسمون بهش هست ما او را حفظ میکنیم ما او را دوست داریم دلسوزیم نسبت بهش خب اینا حرفا و سخنانی هست که آرامش به یعقوب میده اطمینان خاطر میده به یعقوب پس حواسمون باشه اینها درسا و نکاته حاجت های فرزندانمون رو برآورده بکنیم وقت خودمون رو بهشون بدیم نه اینکه بذاریم وقتش تلویزیون بدزده و پلی و دیگر بازی ها بدزده نه بچه‌مون بذاریم اون ش با ورزش لعب با بازی با بازی و ورزش تخلیه بشه نه با نگاه کردن به بازی این تلویزیون رو بذاری این لیگ و اون لیگ نگاه بکنه این بازی و اون بازی به دردش نمیخوره چه سودی بهش داره بعدم یک مسئله ای که اینجا هست که غرب ازش استفاده میکنه برای مشغولیت ما ما را مشغول کردن به بازی نگاه کردن نبازی کردن اینجا برادران یوسف مک و نیرنگ کردن با بازی به خاطر غافل ساختن یعقوب و یوسف بازی وسیله ای برای مشغولیت و غافل شدنه وقتی که من و تو و مسلمان مشغول شدیم به بازی نگاه کردن و بازی کردن و هم غم مشود بازی انواع بازی برای ما گذاشتن از انواع از کامپیوتری گرفته و از این بازی هایی که تو تلویزیون میبینیم از فوتبالش ورزش خوبه ولی اینکه انسان هی این نمایشه براش تکرار بشه فقط نمایشه این تیم و اون تیم بازی میکنن و هی ما مشغولیم و از وقتمون دزدیده میشه هدفدارم دزدیده میشه هیچ کدوم از این تیم ها سودش به جیب ما نمیره ولی اینکه ما غیرت داریم. بازیشون که میشه این آبیه و اون قرمزه و حالا فوش و دشنا و نمیدونم بزن به کووب و همین ها رو شما رو دیدید نمیشنوید. یه انسان به خودش بیاد چرا این بزن به کوبه داره پیش میاد خب یعنی چی خب یازن نفر این ور بازی کردن یازن نفر اینور حالا یک سف شد دو سف شد دو دو شد مساوی شدن بردن خب بعدش چی به من رسید؟ چی سودی من بردم؟ من از وقت خودم دادم. وقت ما با ارزشه، وقت ما تلاش نباید بذاریم بیهوده بره. الله ما را بیهوده خلقت نکرده. الله در خلقتش آفرینش حکمت داشته. ما را برای آخرت و قیامت آفریده. ما باید برای اون روز آماده بشیم. نه اینکه غافل بشیم از اون روز، ماها در غفلت بسیم. هرچند که در صبح بیش از اینه. ولی خب من هر چقدر میخوام خلاصه بکنم نمیشه. کن سبحان به بحمدالله سبحان الله و الله عليه و صلی